الحمد لله رب العالمين و صلاة و سلام علی والمرسلين و المرسلین و علیه و بعد یک مختصر توضیحی برای احکام حج چون خیلی از افراد در روز قبل نبودند. و علیه مختصران میگن تا دوار برسیم به عرفات خلاصه و مختصر برای حج, حج تو به حجی گفته می شود که در ایام حج اول عمره انجام بدهد اصلا در این ماه یا ماه قبل و ماه بعد اگر اول عمره کرد بعد از اون حج را انجام داد این حج حج تمتو نام دارد در قبض در خود حج تمتو اول ادای عمره هست مختصرا خوب گوش کنید تا تکرار بیشتر بشه برای شما بهتر یاد میگیرید و تا بیشتر یاد بگیرید حج راحتری را بیتواری انجام بدهید بی و انشاءالله که رفتید اونجا یاد اینجارمی افتید. هرگاه یاد افتادی بعد یک دعای بکنید. این حقی حقیقی این کلاس است. این مجموعی که دارن تلاش میکنن. چون مجموعه ای مجموعی اینجا مجبورن برای تهیه برنامه. پس اونجا قطعا یاد امروز را میافتید افتید. قدم قدم که برید هم، انشالله که بیاد این تصویرها و این صحبتا، انشالله که هستید. بعد اونجا دعا کنید. سیز دیگر شما مانن میکنید فقط دعا. پس بنابراین اول عمره. در عمره از فرودگاه سوار میشید. اگر مدنی اول هستید، این هم بدانید. اگر مدنی اول، این اول، اگر مکه اول هستید، این اول میرید مکه. احرام را از فرودگاه بندید. اما اگر مدینه اولید، این اول میرید مدینه پس شما اینجا احرامی ندارید. مستوی میره جده بعد میره مدینه که بعضی پروازه مستقی میفرودگاه خود مدینه هستن پس اگر اول سفرش ما به مکه چون در پرواز مشخصه مکه میرید یا مدینه میرید. پس اگر مکه اول هستید از فرودگار احرام میبندیده احرام بست بستن لباس یعنی باید تمام لباس دوخته از بدن بیرون بیشه از لباس هست زیر پیراهنی هست شورت هست جوراب هست دستکش هست بعد همه رو بیرون کنید اما اگر کسی زخم بود آسمان شده بود این حال اشکالی ندارن روی دست باند پیچه بیشه اشکالی هم نداره اگر بیمار بود پس بنابراین اول شما اینجا لباس احرام را می پوشید لباس احرام دو تا چادرن یکی بالا می گذارید ایکی پایی و با پوشیدن لباس اهرام شما در اهرام نیستید بعد چکار میکنید دو نماز میخوایی داخل فرودگاه غسلی کردی لباس پوشیدید بعد دو نماز غسل هم واجب نیست مستحب اگر فرصت نشود میتونی بدون از غسل هم بروی داخل اهرام پس بنابراین پس بنابراین لباس اهرام پوشیده درکت نماز میخانید هنگام نماز با همین چادر سر می میپوشانید نماز خاندی بعد از نماز سر لخت میکنید، میتونید بعد از اون نیت نیت چیست بار من اراده عمره دارم آسان بفرما و از من بپذیر یا عربیش اللهم اینی ارید العمرتا فَيَسِّرْهُ لِي و مِنِّي بار الله این دعای شست که من اراده عمره دارم آسان فرما و از من بپذیر هنوزم احرام بسته نیست بعد از اون فوراً تلبیه میگید لَبَّیکَ اللَّهُمَّ لَبَّیکَ لَبَّیکَ لَا شَریکَ لَکَ لَبَّیکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلکَ لَا شَریکَ لَک با گفتن این شما بسته میشه این را باید یاد بگیرید بدون این احرام شما بسته نمی شود اگر کسی نمیتونه یاد بگیره پس باید با کسی باشه او تلغین بکنه و این تکرار بکنه تا یاد بگیری بدون این احرام نیست احرام که بسته شده حالا شما در احرامی ممنوعات احرام لازم میشوند. ممنوعات احرامی آن نمی خلاف این استفاده اکر جایز نیست پوشیدن لباس جایز نیست و صابون خوشبو جایز نیست کشتن شپش جایز نیست و از لوازمات همبستری کلا ممنوع هستند حتی نگاه کردن به عورت خانم هم جایز نیست دست زدن هم جایز نیست و تمام ممنوعات شروع میشن شما در ممنوعات احرام قرار میگیری همه چیز حرامه کامل گرفتن ناخون هم جایز نیست البته قبل از احرام می توانید عطر بزنید قبل از اینکه نیت بکنی اگر کسی زد و بوی عطر بعد از احرام باقی مان اشکالی ندارد این قبل از احرام کسی استعمال عطری کرد و بویش تا بعد از احرام ماند اشکالی ندارد در احرام چیزی رو خللی وارد نمی کنه اهرام احرام نباید استفاده بکنی چیدن ناخون هم حرام میشه پس شما در احرام وقتی احرا بسته شد حالا سوالی هواپیما دیگه اونجا مشغول موبایل نباشی حالا هرچی فیلم هست دانلود کنی شروع که باید نگاه کرد در بازی کرده کارش ما این نیست یک مدتی از انترنتی هم فاصله بگیری تاکه کہ حاجت بشه این فیلم ها رو هم دیگه هر چیز گوشی رو خالی می‌برید تاکه ذهن تو مشغول هم نباشه بزار کمی راحت تر صحبت اما اینا چیزا هستن که مردم گیر میشن در مسیر بیشتر سعی کوری تلبیه بخونید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شبیک لک لبیک تلبیه گویان حرکت میکنید به طرف حرم الهی باید قبل از میقات اینها تمام شده باشد. می میرسید فرودگاه جده فرودگاه جده رسیدید در فرودگاه جده قبلا گفتم بازم تکرار میکنم حمام خیلی زیاد هست خیلی فراوان هست اگر هر حاجی یک ساعت آخر حمام بمانه باز کسی مزاحمش نیست خیلی زیاد هست، پس اونجا داری استهمامی بکنید چون که مستحب هست، سوار ماشین میشی فرصت هست، نه ترسید که از سرویس میمانید. ایلا ماشالله سرویس زود آماده میشه زود آماده میشه حدی اقلش یک ساعت هست، دو ساعت سه ساعت، گاهی نصف روز آخر فروختن دی هم افرادی میمانند، چون که برنامه داخل مسیر و داخل حد، این دیگه داخل مکه میمانند. در حالی استهمام میکنی تعلیق گویان طبی کاری. ذکر بخوانید لبیک الله لبیک بخون بار الله من حاضرم اونجا اعلام حضور در حرم الهی تلبیه گیاه میرسی به مکه مکرمہ از خود جردی تا مکه نزدیک 65 کیلومتر تا کیلومتر بیشتر نیست میرسی مکه مکرمه مکه کلا سیدید انشالله اونجا دیگه کار انجیب ده انسان باید بعد پیاده بره اما نمیشه میری اول به خونه یا ہوتلی کی تعلق داره شما. اونجا فرصت بود یه غسل بکنید. غسل کرده بعد تلبیه گویان میری حرام. مسجد الحرام که وارد شدی از دری که میبینید همونجا بیستید با دیدن مسجد الحرام دستار را بلند میکنید و دعا میکنید. چون وقت قبولیت دعا هست. اجل نکنید. اگر فرصت بود. اگر فرصت بود مستقیم برای تواف میرید. تهیه المسجد برای حاجی لازم نیست چون اول نکایی شروع بیکنه توافق بیت الله هست پس میری داخل حرم اگر فرصت نبود اله ساعت و نگاه بکنی ساعتای که اونجا نسبند داخل حرم بالا ساعت دواره نوشته نماز ساعت چند میشه مثلا اگر وقت زهر رسیدی نوشته زهر ساعت چند میشه همون ساعتی بالا نوشته دقیق نماز میشه فکر نکنی حالا نشت یازدو سی و پنج نماز میشه فکر 11 و 35 ازام میشه یک نیم ساعت با صبر مید با؟ اونجا انجو اونجور نیست مکه مدینه نه چون مکه موقعیت خیلی حساسی داره لحظه کاروانه حج است اگر یک کمی تاخیر میشه این همه حاجی رسیده فوراً ازدهام تواح میشه در مکه زیاد صبر کنن ده دقیقه صبر بیکنن پس شما دیدید اونجا نوشته ساعت یاز دقیقه یا بیس دو دقیقه پس شما رسیدید هم ساعت دوازده رو پس تواف شروع نکنید چون نمی رسید به خود نماز پس تیب همون ساعت عمل کنید میرید اونجا اگر فرصت بود زود رسیده بودی یا بعد اشار رسیده بودی یا بعد از فجر رسیده بودید حالا فرصت زیاده اولین کاری میشه شروع کردن تواف, می تواف. در تواف بیت الله نیت فرض هست اگر بدون نیت کسی حمجوری بیچاره خے تو قبول نیست حالا قبلا این درم برای بار سوم دوباره میگم انگا تواف توف با اینجا بیس اینجا نیت میکنید این قبل از رسیدن 13 به اینجا اینجا نیتو میکنید اینجا که می رسیده حجر اسواس سمت راست شما قرار میگیره اینجا ایستادی حجر اسواس سمت راست قرار میگیره نیت میتونید نیت چی است اللهم انی اورید توف بیتک الحرام فیسره لی و تقبله مندی این عربیشی شاید مشکل باشه بی خدایا بار الله اراده توافه بیت تو را دارم بار الله آسان فرما و از من بپذیر بعد از اون روی این خط قرار میگیری اگر اینجا خالی بود اگر اینجا خالی بود مستقیم دستارو اینجوری بلند بگیر نماز نمازه بسم الله الله اکبر ولله الحمد دعای دل طولانی هست همین رو یاد بگیری برای شما کافی هست بعد میری نزدیک این محفظه ای هست. دستار رو باننده سجده میگذارید رویش بعد با احترام میبوسیده. و اما فرصت اینقدر احترام اونجا فرصت نیست. ال همون یک بار دستت هم برسید هم خیلی شاکار کردید. اگر فرصت شد. اما شما چون در احرامید سعی کنید که دست نزنید اینجا. چرا؟ چون احتمالا اینجا مؤثر هست. مؤثر باشه اگر دست شما پراد عطر بشه، برای شما مشکل سازه حاجی محرم نباید دست خود را یا لباس را یا بدر را معطر بکنند. پس از اینجا دوباره شروع میکنی تواف را تواف شروع میکنید هنگام تواف کردن نگاهتون از اینجا عبور نمیکنید عموما اینجا رو میبندن با یک ستونهای پلاستیکی میارم میبندن گاگه باز میذارن اگر بست باز بود از اینجا دور نمیزنید اگر دور زدید این تواف شما قبول نیست و از پشت این نیم دایره از پشت این دور می زنیده. هندام توافف کردن سکوت یایزه کسی سکوت که هیچی همین میجور رفت؟ اشکالی نداره. ذکر کردن بهتر و اولااتتر هست. بعضیر میبین اونجا کتاب دارن یک گروهی دارن میخونن افرادی پشت سر تکرال میکنه یک نمایش زیبایی هست. شما هم اونجا جبگیر میشی و اونها زمزم میکنی این ثابت نیست این سنت نیست. شما از این کاران نکونید کتابچی بر نداری اونجا نخونید هرچی برد هستی از حفظ بخون ذکر بکن قران هم میخونی از حفظ قرآن بخون قران رو داخل دستت نگی مصحف رو به دست نگیرید آرام آرام تواف کن هنگامی تواف کرده هم اینجا فقط سر بالا باشه اینجوری هم خلاف ادب هست سر پایین بگیرید با احترام و با متانت اینجا تواف شروع میشه این هم بدونید بوسیدن تنها این سوراخ جایزه در هیچ جایی در بوسیدن ما نداری هیچ جایی رو نمی بوسه بیت الله جای بوسیدن نیست این در بیت الله بوسیده نمیشه مرتضم بوسیدن نمیشه این رکن یمانیک اینجا هست بوسیده نمیشه تنها همینجا بوسیده میشه اینا هم بدانید پس هر کس میتونید از پشت نیم دایره میرید دوار میرسید اینجا اینجا اگر فرصت و توقف بکن بسم الله الله اکبر این رکن یمانی را دست بزنید فقط دست زدن سنت، بوسیدن سنت نیست. از اینجا تا اینجا ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تا اینجا میخونید. اینجا که رسیدید دوباره استلام. همو کارم جسم الله الله اکبر لله الهم. اگر نم دست نمیرسه اونجا، دستار اشاره و دست‌ها رو ببوسن کافیه. اگر چوبی یا داشتی آثار اونجا بوردید، فقط تماسی حاصل که بوسیدید هم کافیه. اونجا دیگه زیاد تلاش نکنیم باید رفتن اینجا چون خیلی سخته خیلی سخته اونها که رفتن میدونن چقدر این سخته و خیلی مشکل مسئله بعدی اینجا ازدهام زن و مرد با هم تواف کردن جایز نیست خی... گای گای خیلی متاف ازدهام خیلی زیاد میشه زن و مرد با هم تواف میکنن این جایز نیست که تماس نامحرم با نامحرم باشه یه حدیث حضرت امه سلامه رضی الله تعالی در حجت الودا سوالی فرستی گفت یا رسول اللہ تا من میخن بیت الله را فرمودن سبر کن ما نماز شروع کردیم ما که نماز شروع کردیم شما از پشت ما توافت انجام بده یعنی yani نگه کن انجا نباید بین مردم تماسی باشد صحاب اکرام ازواج متارا اینجوری عمل می کردن ازدهام زیاد بوده بر طبقه دوم. بر طبغه سون تا وطب دو حالا خیلی توصیه خیلی خوبی دادم فاصله ستونونه ها خیلی زیاد است. خیلی راحت میتونی خیلی با آرابر در طبقه دوم تووا بکنید. ازدههایی به اونجا صورت نمیگه به طبقه دوم دو توافت دو دو انجام بده از پایین برای شما بهتر هست. اگر تنها بودید که میتونید پایین هم توافت رو انجام بده. پس دوباره میرسید دوباره هم اینجا کارو میکنید حرکت میکنید تا هفت دور. هفت دور یک تواف حساب میشه تواف شما تمام بعد از اون دوری که از نماز تواف واجب هست باگر کنم از تواف رو بخانید دور کنم از تواف کجا؟ پشت این این میگه مقام ابراهیم یعنی طوری بیست دیکھ این جلو باشه و شما وسط باشینجا. این وسط باشه شما پشت ای و بطلع جلو این مستحب هست واجب نیست اگر فرصت شد در این محبت که اینجا هسته توافر بخانی اگر نبود دهام زیاد بود و اینجا خیلی دهام میشه خیلی ازدحام میشه بری جهات دیگه اون بر برو اون بر برو جای دیگه برو اونجا بخان با آرامش توره نماز میخونید در نماز چون در خود مسجد الحرام نماز میخونید روخ کردن به خود کعبه واجب فرض هست یعنی باه هر کجا ایستادید جهت شما پیشانی به طرف کعبه باشه اگر نبود نماز شما ادا نمیشه اینجا که ما استادین جهت را ما سجده میکنید در جهت قرار میگیرین اما داخل مسجد الحرام به خود کعبی با سجده شما اینجا سجده رو انجام میدید اما اگر به صورت استادید که مثلا اینجا داخل مسجد کل استادید که سجده شو اینجوری میشه از یک گروشی از کعبی رد شد. وقتی رد شد نماز شما درست نیست اگر تنها این, این را سجده هم کردید و صورت شما به کعبه اتصال پیدا نمیکرد که خطی الکشیده بشه به کعبه نمی رسید بعضه نماز شما باطل میشه باید به صورتی بیستید که هر jihad دائر میاستید به طرف کعبه و از اینجا از اینجا از پشت از هر طرف به کعبه واسه سجده بکنید خطای کجا کشیدن سنگ های که شده مستقیم به خود کعبه اند اگر روی همون خط هم بیستید دیگه مستقیما هر کجای حرام. بیرون حرام طبقه بالا هر کجا تیغ همون خط اگر بیستید مستقیم به کعبه صف سجده میکنید خط ها رو طور تنظیم کرده از هر کجای حرام مسطور حرام بیرون مسطور حرام خط کشیده همون خط رو بگیر مستقیم به طرف خود کعبه رسیدید شما پس یک مسئله همین است که باید این کار رو انجام میدید اما چون شما حالا احرام هستید دار عمره انجام میدید وقتی رسیدی اینجا بغل سمت راست را باید بیرون کنی بغل بیرون میشه و احرام را روی شانه سمت چپ میاندازید و رمل می کنید رمل چیه اینجوری تو باید شانه ها تکان بخورن اما یه پهلوانی حرکت می کنید. اگر ازدهام بود و نمی تونستید یعنی بدوید صبر کن باز شد دوباره همین حالات برو تاسه دار این ها تکان دادن شانه ها سنت هست و این سنت ترک نکنید خانوم ها تکان نمیخورن. خانوم ها آرام آرام حرکت نیکنند خانوم ها دیگه جای دست و بیرو هم نمی کنند احرام خانوم همین لباسش هست فقط صورت را بیرو بیکنه بس میتونه دستکش دست, دست کنه میتونه کفش بپوشه چیزی دیگه برای خانوم نیست پس بنابراین اینجا بعد از اون اله خلاصه داره طولانی میشه حالا بعد رفت اینجا هفت دور تمام شده میری بعد آب زمزم میخور تا سیر آب زمزم بخ هرچی میتونی آب زمزم بخوری، معمول میتونه زیاد آب زمزم بخوره، اما منافع زیاد نمیتونه. ایلی میخوره، اول بیا علب سیر شده، گنجایشو رو نداره. معمول نه، اما هر میخوره، بعضی اشتهای بیشتر هست. آب زمزم حتما بخوری، زیاد بخوری و نترسی. این دوار دیگه هدر نمیشه. تمام آب زمزم جذب بدن میشه. خیلی کم بازدهی داری آب زمزم. همهش جذب بدن میشه. در بعد از اون که آب زمزم خوردید نماز هم بود دوباره میاد کجا دوباره میاد داخل بیا دیوودا دوباره میرسی اینجا برای بار نهم استلام میکنید بسم الله الله اکبر ولله الحمد این کارکای 9 تا شدن بعد از اون میری به طرف صفا از اونجا مستقیم همون مستقیم هجر اسود که شما یه پشت سر نگاه کنید یه تابلو اونجا زده که الی الصفا به طرف صفا میری صفا باید حالا صفا این کوهی صفا این کوهی که انجا هست هنوز این کوه انجا وجود داره اما داخل شیشه کردن چسب زدن که چون بعضی بین از این کوه بر میدارن از کندکاری می کنن مشغولن تا تبرکات کوه رو بیارن حالا الحمدلالله که کلان داری محفظهی هست که کسی دسترسی نداره این کوهی صفا هست اینجا هم نقشه جدید اینجا بیستی که. به رو ببینید. سنت همین است الله رو میبینی، به رو بلند میکنی، دعا میکنی. دعا بکن، زیاد دعا بکن. دعا عربی هسته، این کتاب هست دوباره تهیه کنی. از می دوستانی که داره برنامه ها را ترتیب کتابچه درست کردند و داخل کتابچه هستن دعاها. اینجا دعا میکنی، دعا کردی، یا این میتونی عیب رو بخونی که اینا صفا والمربط منش عیب الله. این عیب رو بخونی، دعا بیکنی. بعد از اونجا نیت میکنی نیت سا... سای بین صفا و مروه باری الله من اراده سای بین صفا و مروه را دارم خدای آسان فرما و از من بپذیر بعد از اینجا حرکت از این صفا حرکت میکنی اینجا دو لامپ سبز رنگ بالای سخه اون منطقه هست خیلی خونک است. خیلی خونک هست. خسته نمیشی مسافه دوره طولانی مسافت طولانی هست اما خونکه اصلا اذیت نمیشید پس اینجا بین صفا جای صفا که هست از اینجا دیگه هر کس می تونید جای لامپ ها لامپان بیا سان قبلی الا اینجا لامپ از 1.5 متر مونده به لامپ ها اینجا می دوید مردان باید بدوند تا لامپ بعدی لامپ بعدی امور کردی آرام آرام می تونید بریید اینجا خانوم ها برای اونها دویدنی در کار نیست اونها آرام آرام میرن شما اون طرف تراب رفتید، استادی منتظر خانوم باشید. میری بالا این مروه. بالا کوی تا اینجا میرسید، رو دواره مستقی نگاه میکنید به بیت الله. دواره دعا میکنید، دعا دوار که دواره برمیگردید. تا اینجا که رسیدید یک سایه تمام شد. برمیگردید اینجا 22 دو تا. دوباره بیت الله نگاه میکنی دعا میکنی دوباره اینجا دوار میدوید، دواره میری بالا، اینجا چند تا سه 6. برمیگردید 4. میرید پنی برای میگردید شیش هفتمی باید روی هفت هفتا بشن اگر روی مروه هفتا شدند شما اشتباه کردید بعد هفتمی روی مروه تمام بشه همینجا دوباره نگاه میکنیم به رو دعا میکنیم بعد از اون میری داخل حرم دو رکعت نماز نفل واجب نه دو رکعت نماز نفل است و داخل حرم داخل این متاق میخونید تا اینجا احکام عمره تمام شده بعد از اون از اهرام میاد بیرون احرام آغایون سرو میتراشن یک موه کوتا می کنه یک چهارم تراشدن سر واجب هست کمتر از آن اگر تراشی از احرام بیرون آمد دم لازم میشه یک چهارم یا موها رو کوتاه کنه یا بتراشه کوتا میکنه حد حداقل باید بنداز یک بندی انگشت کوتاه بکنه یک بندی انگوش کوتاه بکنه پس کوتاه کردید امر کسی بیاد فقط بگه من یک چهارم کوتاه می کنم بغیر و میزارا برای عمره های بعد این مکروه است این جایز نیست کامل کوتاه کو کنی کامل به بل بعد خانوم ها نمی تراشن خانوم ها زیاد کوتاه نمی کنند یه قیچی با خودشون بگیرن همه موها رو جمع کنن اندازه بندی انگوش حالا کوتاه کنن اما موها بالا پایینن امکان داره که موها با هم مصابی پشت سر از جاهای دیگی هم موها رو بگیر اندازه بندی انگشت تاک از احرام بیان بیرون بعد خود تان میتوانی از احرام بیاد بیرون سر خود شخصی که حج عمر انجام داده میتونه با یک جیلیتی سرش رو بتراشه درسته یا حاجی بعدی که اون هم میخواد بیاد بیرون از احرام اون هم میتونستش رو بتراشیده به شرطی که نیت این واسه دارن از احرام بیرون میشیم اگر بدون این نیت باشه اون نکرده باشه در این صورت دمی لازم میشود نیت خروج از احرام سر بتراشیده اگر کسی مو نداره سرش کل هست کچل هست فقط هر دادن تیغ واجبه بعد همون تیغ رو رو سرش حرکت کل بیرد تراشیدن قرار قر تا اینجا دیگه عمره شما تمام شده بعد از اون از احرام بیرون لباس میپوشید کامل حلالیده تا روز هشتم حالا میتونی هر چه عمره هم میتونی انجام بده عمره انجام بده طواف نفل بکن حالا برای شما تا روز هشتم ممنوعیتی نیست همه چیز حلاله همسران حلال میسا همه می چیز حلال اینه خون هستی اونجا تا روز هشتم روز هشتم حالا پنج روز روزه ایام حج از روز هشتم تا 13 اینا پنج روز حج اینها حساس ترین روز شما و کارهای شما از روز هشتم شروع میشن تا این سه چهار روز خیلی شما خسته میشید باید خوب این چهار روز پنج روز را اونجا دیگه آماده باشید قبل از که درید مکه حالا هر روز نیم ساعت پیاده روی داشته باشید تا اونجا رسیدی الله نگه خسته شدم پاها در گرفتن طواف نمیتونم بکنم اینجا دیگه دیگه روز یک ساعت دو ساعت پیاده روی کنی تا اونجا دوچار مشکل نشیده پس بنابراین روز هشتم روز اول صبح هشتم داخل حرام سو بی هشتم اول احرام میبیندی اما عموماً و جا شب میبرن الحمدللہ ایرانی روز میرن اما بعضی هاک اونا شب میبرن اگر شب بوردن که همون شب احرام میبیندیده اما اگر روز بردن مستحب اینه سنت این روز هشتم باید برید. پس روز هشتم روز هشتم احرام می بندید درکت نماز می خانید. بعد از اون نیت می کنید نیتی است اللهم اینی ارید الحج فیستیره لی و تقبله منی بار الله اراده حج دارم برای من آسان فرما و از من بپذیر. این نیت را میکنی تالبیه میخون لبیک اللهم لبیک لبیک لا لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لک این خواند احرام است شد بهتر است مستحب این است میرید حرم میری حرم اتواف نفلی انجام میدی بعد از اون دیگه بری اون روز اگر هر کسی رو حرم صفاشو میبره اون روز که هشتم اگر کسی اون روز رو حرم صفاشو میبره عجب صفای اون روز داره چون هر روز شبا به طلاح رو اما اون روز یک کیفیت خیلی عجیبی میشه چون خودم دیدم این چیزو میگم خیلی عجیبی چرا؟ چون تمام مردم یک نواق سفید پوش هست روزهای قبل انجوریس همیشون سیاه ها سفید ها مختلف داره. اما اون روز ندگی افتر چون میخان بران منا اون روز تمام خود مطاف یک نواق سفید پوش هست همی دارند دارن می میکنن برای رفتن بمنع. اگر فرستصسو قطا این کار رو انگ... اما برای همون سفایش برید اونجا ببینید چه خبراصل حرم و چه دارن میکنن؟ بعد از اون دیگه اگر یاد دارید راه ها رو بلد هستید که برید چون که مسیرها مستود میشن در پنج روز کللا مسیرها مستود میشن مسیرهای ماشینها ماشین ها مسطول میشن موتور سوارگی شما سرشما کلاه میذاره میگی تاام ها می, می, می, می رسوننصد ریال میگیرم. صد ریال صد هزار تومن. چی استیو بیشتر هم نیست گاغه حتی 500 ریال هم میگیرن 500 ریال میگیرن میگن گیرن. شما رو تا حرم میرسون تا منا میرسونید سوار اینها نشید چون کجا شما رو جای خیمه ها نه دور میگه اون مناب رو حالا دیگه خیمه ها نشون میدن حالا خودت برو داخل خیمه ها کجا میگیری پس فکر کنید که با همون سرویسی برای شما هست برید اگر سرویس نبود پیاده برو بهتر از اون از که 500 هزار تومان رو به خاطر نیم ساعتی اونجا انفاق بکنی حالا کسی داره خرج کنه اما برای کسانی که ندارم تو چار مشکل نشن. به هر حال پس از اونهایی حج رفتن راه ها رو میدونن از تونل ها عل تونل ها داخل تصویر وانی از پشت صفا و مروه پشت صفا جای سرویس های ابو جیه دو تا تونل هست یک تونل مخصوص اتوبوس ها ماشین نقلیه یک تونل پیاده از اون تونل حالا میرید فقط تلبيه گویان لبیک الله لبیک توده دو تو تا ثونه بعد روی صاحبانی میاد بعد رسیدیش شما به منا همه اینها پر از از به اسلام خیلی قوی دارن از موتور هواپیما قوی ترن خونک میکنن کس اونجا زوف نمیکنه نمیوفته کله هوایش خنک میشه تخلیل میشه هوایش راهش آسونه تلبيه گویان لبیک الله و لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اینا دعا میخونی گویان حالا عاشقوار به طرف منا حرکت میکنید. کنید می فجر رو در مکه خاندید پنج وقت نماز در منا خواندن سنت زور از مغرب اشعاب و فجر روز نهم باید نمازها رو در منا بخوانید. این سنت هست اونجا خونده بشند در منا شما کاری ندارید هیچ کاری نیست فقط خوابیدن شب سنت هست و پنج وقت نماز رو اونجا خاندن از زمینی هستی تر بین دو تا کوه قرار داره اما سنت حبیده سنت حضرت ابراهیم علیه و السلام اونجا برو بخواب حاجی میشی پنج وقت نماز رو بخون میشی پس اونجا پنج وقت نماز میخانید بعد از اون روز نهم روز نهم از این صحرا این مسجد خیف است این مسجد خیف که نزدیک جمرات از این مسجد اینجا خیلی ازدحام میشه بیش از حد ازدحام میشه داخل مسجد خیلی مشکل کسی داخل مسجد بتونه بره سایلتون داخل مستی بریشون هر جای مینا اسکان گرفتیل اسکان داره داخل سایبانها بشین اگر خیمه نداشتیید داخل سایبان داخل زمین بشینیدو سرویس داخل خود این راهروها سرویس خیلی زیاده آب سردتون خیلی زیاده دو چار مشکل نمیشی غذا هم خیلی فراوان جا غذا تهیه کنید تصویر خیمه اینا خیمه ها هستن خیمه های ایرانی ها این طرف ها این طرف نیستن حالا صحنه پشتی بیار نیست. اینجا تقریبا نی. این میبینی ماشینی این تقریبا بالا بالا تقریبا این قسمت ها. این پول اینجا. این, این پشت اینجا پشت ایکوو محل اسکان ایرانی ها هست. خیلی جای خوبی هست هوج خیلی عالی هست از اینا داخل دره هست و اونا بالای سکو هستند. میری خیممهتون اینجا استراحت. روز نهم روز عرفات حساس روز شما روز نهم هست حالا الحج الارفا. حج روز عرفه اگر روز را در نیافتید حج شما باطل میشه اینجا خیلی حساسه اینم بدونی اگر کسی قبل از عرفه قبل از روز عرفات در حالت احرام اگر با خانوش مقاربت داشت حجش فاسد میشه باید احکام انجام بده دم لازم میشه سال بعد دوباره برای حج باید بره پس احکام خیلی سخته روز نهم سعی کنید که حتما روز نهم را در یابید اگه داخل حرم بشینید که من این شعر حرم میخوام تواف حالا خالیه کسی دیز تعویذ قلافه کار میشه من این نگاه میکنه تواف میکنم, میکنم، بوسه میزنم حجر را از عرفات میمانید حج هم باطل پس اینجا دیگه مستقیم روز نهم از منا علیه عرفات برو منا از منا روز نهم از منا دوباره بیا شما به طرف عرفات مستحب است که روز نهم نماز را این مسئله خیفه روز نهم نماز را نماز فجر را در عرفات در منا بخونی این سنته و صبح روز نهم حالا از ای قسمت. این قسمت این قسمتی اینجا من اشاره میکنم کنم حالا مترو هست اینجا متروها هستم متروها شما را منتقل میکنم به عرفات سرویس هست، فراوان ماشین هست، تاکسی هست کل مسافتها خالی هست میتونه شما رو به عرفات برسونه پس بهتره که روز نهم را در منا نماز بخانی اگر راه را نمیدانید حج اول شما هست اگر سرویس اگر مسئول کاروان اعلام کرد که ما امشب میریم عرفات حتما با ماشین بریم اونجا نشینید داخل منا چون امکان داره فردا فراموش میشید یا راه را گم کنید و به عرفات نرسیده چون مسافات منات عرفات دور زیاده کم نیست. پس بنابراین روز نهوم از عرفات تا مکه هیجده کیلومتره. از عرفات تا مکه هیجده کیلومتره. پس سعی کن اگر مسئول اعلام کرد که شب میریم ما میریم عرفات شب برید شما. اگر کسی خودش قبلا حج کرده داره بلد هست خودش گفت من خودم میرم فردا علم میتونه سنت همینه. پس روز نهوم نماز فضل خاندید کالبیه گویان لبیک الله لبیک لبیک لاش دیکه لکه لبیک حرکت به طرف عرفات عرفات رسیدی. الله خود عرفات می‌رسید در خود سه‌رای عرفات این هست. الله برپایی در ورودی عرفات بر اگر این است تقریباً این ورودی عرفات از اینجا شروع میشه. از سه‌نک جهلیا. بر جای بسته نمیره. از اونجا عروضی او مس تابلو زده تابلو خیلی بزرگی. نوشت بدایت و عرفات خیلی تابلوهای بزرگی زرد رنگ. ها. اینجا میبینی از هر طرف. از اون به مرز باید عبور کنی. میبینی افرادی را که بیرون از مرز استادیان. شما کار بونه نداشت باشه الله فکر میکنه میستم سریتر میتونم بنا فرار کنم کنار بودالفان. این کار نکنید. باید از اون تابلو عبور کنی اگر عبور نکردید حج شما باطل میشه باید در سحر عرفات پا را بگذارید و در بس بر... گفتم دیشب گفتم حالا این ورست یکی اتجاه قبله این لاست اتجاه قبله هست یعنی قبله اما این حالا این هست عرفات شما کل تابلوهاک می‌بینی این جهت قبله جا اتجاه قبله یعنی برای شما خود قبله را مشخص میکن اگر نماز اینجوری نماز بخونید باشه رفت اینجا غسلی بکنید حمام اونجا هست اگر فرصت سو غسل میکنید و وقوف عرفات شما بعد از زوال شروع میشه یعنی قبل از زوال هنوز شما احکام روز نهم شروع نشده آن. بعد از زوال یعنی بعد از ظهر شروع میشه بعد از ظهر اگر پسی حد کسی حتی سیو بعد پا داخل عرفات گذاشت این میشه حاجی با احرام بیاد فلا عبور بکنی اگر بیهوش باشه فقط همون جسد او را بیاره اونجا شخص داخل کماه هست باز حجش درستی اگر در احرام باشه اگر اونجا فقط عبور کنه یه لحظه بیشی بره بعد از زوال باشه حجش درست میشه میشه حاجی اما چون که قبل از غروب اگر رفت بیرون یک گوسفند میشه شه باید بکشه حالا بنابراین پس بعد از زل بعد از اون داخل صحرای عرفات می ایستید راهش جوری هست راهش خیلی احکام خاص خودش را داره عرفه في روز عرفات روز قبل مئستيد بعد الزوال سوال الله أكبر وللله الحمد لا إله إلا الله دعا ربي قولي دعا ديشاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحم وهو على كل شيء قدير همين جيال بيگري ان دعا خير زياد خونده ان ذكر انبیاء بوده انبیاء ان دعا رو خير زياد بيخونه بہترین دعا بزورترین روز در كل سال افضل ترین روز روز عرفات هست. هیچ شخصی از روز دیگه هیچ عملی از روز عرفات افضلتر نیست قسم داخل صحرای عرفات بعد از ظهر بعد از ظهر روز نماز می خاندید نماز ظهر خاندید رو به قبله می ایستید حالاش چی کم رو داخل خود عرفات. می داخل عرفات رو به قبله می ایستید دعا میکنید دعا میکنید استاده دعا دعا خسته شدی بشین استراحت کن دوباره بلند شو دعا بکن در سا بلند کن دعا, کن, دعا کن اگر خسته در رها بکن بیست دعا بکن دوباره بلند تا غروب با تا غروب کار شما همین باشه. اما اگر کسی دعا نکرد خوابید اشکال نداره. رفت تفریق کرد حالا ها نگاه میکنن عرفات نگاه میکنم حجش درست میشه. اما این کارهاار نکنی برای دیدن عرفات روز دیگر بری اون روزو مشغول عبادت باشید. این هست جبل و طبق بعضی از روایات صحر عرفات جایی هست که حضرت آدم و حوا علیه السلام هم دیگر رو ملاقات کرده اینجا ببینی افرادی بین بالا کو این اشتوائی بالای کو رفتن درست نیگه انها بدعتن اینها خرافاتن این آغای اینجوری خود رو چسمده دستان بالا کرده اینها بدعت و خرافاتن تنها یک جاد دست ها چسبیده میشه داخل بیت الله دیشاب گفتم برای شما داخل مرتزم جای مرتزان دستهار رو بالای دیوار مرتزان به طول میچسبونی، صورت هم رو دیوار بچسبه با گریه کنی، دعا بکنی. حالا این از مرتزان، این مرتزان، این گوشه دستهار بلند کنی، صورت را بچسبانی، دعا بکنی، دعا کنی. اگر جای گیر ما اینجا که جا گیر میاد چون اختر ماردوی نمیدونن، و اینجا فقط همین جا شلوغ این گوشه کمی خلوتتر میشه. این کار اونجا میتونید بکنی گریه کنی و دعاش مکرمل. بعد داخل عرفات پس بالای کوه نمیرید بالای کوه رفتن بدعتی هست نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و الصلا پایین این جای سنگهای بزرگ پایین سنگهای سخرای سنگهای بزرگی هست این قسمت ها عوقوف میکرد بالا تشریف نمیبرده این ساختمان هایی که اینجا میبینین ها بیمارستانن درمانگاه ها و رستوران هایی هستن برای غذا پس در این میدان اینجا میش این تاغرور قبل از غروب نباید از عرفات بیرون بشید اگر کسی قبل از غروب از عرفات بیرون رفت یک گوسفند واجب باید بکشه اونجا. اما اگر رفت بیرون دوباره برگشت اومد اون بعد ساقط میشه دوباره گوسفند لازم نمیشه پس وقتی غروب شد افطار غروب کرد گاهی گاهی توپی به در میاد یعنی انتهای وقت حالا میتونید بری. افطار اونجا غروب میکنه این طرف افطار به طرف خود کعبه قروب آفتاب شد حرکت کنید آرام آرام حرکت می کنید نماز مغرب را در عرفات نمی خانید نماز مغرب باید در وقت اشاه در مزدلفه خونده بشه نماز مغرب در وقت اشاه واجبه در مزدلفه باید نماز را اونجا بخانید پس بنابراین با متانت از صحرای عرفات بیرون می شید و الاشت بردگی برد عرفات از عرفا میه بیرون آرام آرام به طرف مزدلفه در مسیر هم شب هست هوا هم خونک میشه در مرکه هل لحظه باد هست جایی که نزی چندین و هوا هست مکه مکرر هل لحظه از هر جهتی بادی میوزهده حالا میری مزدلفه در مسیر حرکت میکنید به طرف مزدلفه آرام آرام حرکت میکنید خواسته شدی استراحت کنی بشینی دووار حرکت کنی اتوبوس بود بهتر اگر نبود پیاده برید و خود را به مزدلفه میرسید یه یعنی نکته براتون اینجا بگم حتما این حرف رو گوش کنید صد چهار مشکل نشید اونجا در اگر پیاده خواستید برید پیاده در ورودی مزدلفه ورودی مزدلفه چون کوه غزه است جای نبی کریم قیام کرده اینجا مردون که میرسن خود را روی مسیر میاندازم ارا اتراق میکنن میخوامم خیلی ازدحام میشه سعی کنی از این مسیر وارد نشی چون اینقدر از یرمشی که انسان حتی تلفات میده بیش از حد از میشه اگر توانستی از مسیر اتوبوس ها برید اونجا حصار است و سیم خاردار هست اما سیم خاردار بعض یا باز کرده ازمون عبور کنی از مسیر اتوبوس وارد بشی زودتر میرسی اگر از مسیر پیاده ها رفتی راه رو بستند خیلی اذیت میشی بیش از حد اذیت میشی میری مزدلفه اون شب اگر مزدلفه اگر مزدلفه قبل از اشا رسیدید باید نماز مغرب را بازم نخانید نماز مغرب نباید خوانده بشه چون نماز مغرب باید در وقت اشا خوانده بشه همراه با نماز اشا و اونجا که رسیدید اذان داده میشه یک اذان و یک اقامه برای هر دو نماز یک اذان و یک اقامه برای هر دو نماز هست پس یک اذان داده میشه اگر جماعت کند اقامه میکنی نماز شما شروع نماز می خانید سنت های بین مغرب و اشاره هم نمی خانید بعد نماز فرد اشاره خاندی بس سنتارو رو کسی خاص مسافر نبو سنتار ها بخونی تو وقتی عبادت هست شب مزدلفه افضلترین شب هست بعضی میگن حتی از شب قدر هم مزدلفه افضلتر هست پس خیلی مهم از مزدلفه پس بنابرین اونجا شب را اونجا میمانید. تا فجره اینجا چون که شما شب را مزدلفه ماندید و وقوف مزدلفه واجب هست وقوف مزدلفه کی هست شب وقوف نیست یعنی شب کسی اونجا خوابید همون شب قبل سهرگاه رفت بیرون به طرف منا اگر دوباره رفت یک دم لازم میشه شب را همونجا در میدان مزدلفه بخوابید در مزدلفه وقتی شب را خوابیدید تلیکو جاورتا پس چیز یاری شما؟ چیز نهیم؟ خوب، شب را داخل موزدلفه، در موزدلفه شب اونجا می خوابید، یکی زیاد خیلی عجیب، در موزدلفه شما هرگز حشره نمی بیدی، سرزمینی که اصلا حشره نداره، نه چی پیشی می بیدی، نه پشی، هوا گرم باشی، اونجا پشی نیست. این عجیب جز کرامات خود موزدلفه هست، هیچ چیلیس اونجا؟ هر کجا کو خوابیدی بخوابید اباره مش بخوابید استراحت کنید سرویس و وضوخانه خیلی فراوانه، دی است اذیت نمیشید پس شب که شد اگر افرادی داشتی بیمار افراد مسن بودن، بیمار بودن، خانم بودن که مسن بودن، اگر اینها به خاطر بیماری همون شب رفتن به منا، داخل خیمه ها اینها میتوانند برن چون برای معذورین اینجا محدودیت نیست اگر معذور نیستید باید اونجا بمانید وقوف که شروع میشه وقت سحرگاه باام دمیر وقت فجر داخل شد بعد از دخول وقت فجر انجا وقوف شروع میشه بعد از داخل خود مزدلفه مسجد الحرام م... مشعر الحرام مسجد مشعر الحرام است اونجا رفتن لازم نیست این مصل اونجا بدونم مسجد مشعر الحرام داخل قران که الله ذکر میکنه اما کل مزدلفه مشعر الحرام هست پس در مزدلفه بعد از اون دیگه شما نماز را نماز فجر را در نماز مزدلفه اول وقت بخوانید. به به محضی ازان داده شد نماز این سنت همین است که فقط در مزدلفه نماز فجر زود خانده میشه. حدیث داخل صحیح بخاری دارین حضرت عبدالله بن مسعود می که نبی مکرم سلام نماز فجر را در مزدلفه قبل از وقت معتادش خاند. وقت مشهور اون وقتو زود خاند. نماز را می نماز که خاندید همون لحظه وقوف شما شروع میشه وقوف چیه دست بلند میکنه دعا میکنه همین دست بلند کردید دعا کردید وقوف موزدلفه صورت گرفته همین که از همون بعد نماز فجر، از همین موزدلفه حرکت کنید میرین بیرون وقوف شما درسته اما باید اینها بعد از فجر باشم قبل از اون دیگه نباشند. پس داخل موزدلفه داخل موزدلفه میری شما و از اونجا حرکت. اما قبل از وقتی که به اندازه دو دقیقه فرصت ها برای دو رکات یعنی دو رکات پشش دقیقه مونده افتاو تلو کنه بعد حرکت کنی به طرف منا به طرف جمرات حرکت میکنید و این که حالا ما میشینه افتاو تلو کنه بعد میرم این خلاف سرنته قبل از تلوی آفتاب از سهره مزدلفه حرکت میکنید اما این میدان خیلی طولانیه امکان داره شما ساعت نو ده بتونی از خود مزدلفه خارج میشی مگر کسی که خیلی وارد باشه خودشو برسونه مرز منا و مزدلفه شبر اونجا بمانه بین منا و مزدلفه وادی محسر هست وادی محصر جایی هست که اصحاب فیر عذاب نازل شده اینجا دیگه وقوف نیست و تابلو زده انتها که انتهای مزدلفه بدایت و منا بینی نهای میدانی یک رودخانه بوده، وادی بوده، انجام دیگه است واقف نکن، سعی کنی از جگه سریس سری اومدی کنیم، چون محله موقعی عذاب اصحاب فیل بوده، از اونجا که نوشته بدایت من نا وارد میشید، راهای خیلی زیادی منتظر میشم به جمارد، اکیاس شار جوهره، از که که اسم مهم نیست، اما میگم که راهت به جمرات برایشی، شار جوهره هست. سوق اراب را... راهای های کنجد هستن. یک رایی هست که سایبان. سایکوی ام مسیر سایبان. وقتی وارد میشی سایبان سمت چپ میوفته. سایبانی هست که اونجا دیگه پنکی هم هست، هواکش های خیلی قوی داره. از مسیر سایبان وارد میشی. چون که گرما خیلی زیاده. از خود از جای اول منا تا جمرات خیلی دوره. مسافت زیادیه. اونجا طلافات میدی، خسته میشی، گرم هست، بعض اینجا دیگه غش میکنن، می میگفتن، و خیلی ازدهام، خیلی سخت ازدهام اونجا، خیلی سخت. پس اونجا از مسیح کلی مسیح همون سایبان وارد میشید. از سایبان رفتی، اما گایگه اختیارش ما نیست. در هر مسیحی که وارد شدید، باید همین مسیحو تا آخر برید. نزدیک جمرات می رسید دید، خود به خود، وسیله ح خود همون مسیر شما رو میرسیت تا طبقه اول میبره طبقه دو طبقه سه و اما اگر از مسیر خود صاحبان برید یا از مسیر جوهره برید مستقیم طبقه همکف میرسید به جمرات پس روز حالا اینجا روز دهم ده روز دهم ده پس اعمال روز دهم ده سنگ را هفت تا سنگریزه از مزدلفه این سنگریزه های گرفتی به این قدری باشند این سنگریزه بزرگی این مکروهه. است شما اندازه هسته خرما یا لوبیا باشه نخود باشه بزرته حالا فکرو شیطان حالا من با کلوخ میزنم اینجوری نیست بعض اونجا میبینید بعدم پای میزنم دم پای پرتاو کنم، کلوخ پرت اینا جایز نیستن شریعت اون زمان که ازدهام نبوده نهی کرده حکمتش امروزه چون بعضی افراد از دور پرتاوی کنه اگر با کلوخ بزنن که خیلی افراد میکشن با باعث سنگریزی اندازی باشه نخود یا لوبیا. این سانگلیز کوچک ه تابر میدار هفت سانگریزه سنت از مزدفه بقیه سانگریز ها که از جادیگه برد داشته باشند. پس ه تابر میدارید میری داخل به 100 جمرات تا جمرات بیار جمرات هست نه؟ حال این جمرات در تو چقدر به زه؟ به مدیک وارد میشیم معشله اونجا خیلی خوک است جای استراحت. کلی رهای خیلی قوی هست که هیچ جا دنیا این هار شما نمیبینه خیلی قوی هستن خیلی قوی. کل محوطت رو خنک میکنه به ما از یک وارد علم تغنیه و مسیرش رو انجوری هست مسیر ورودی وارد میشید آرام آرام میرید وقتی میرید انجا لگه اینجا وقت در مستقیم میرید رویش زدن خود جمرات باید به صورتی باشه که اله اول شو جمره میبینید اولی هست جمره اولا. این جمره اولی رو نمیزنید این راها میکنید میری جلوتر و جلوتر میری جمره وسطایی هست اون رو هم نمیزنید میری جلوتر جمره آخری شیطان بزرگ مشهوره اونجا میری نه اینجا از اینجا خلاف سنت هست اینجوری نه سنتی است بعد هنگام زدن جمره به صورتی بیستید که مکه سمت چپ شما باشه منا سمت راست شما باشه و بس رو پرتامی یعنی اگر مستقیم وارث شدی اینجا سخته اجره نکنی از اینجا دور بزن برو جلو جلو اون ور خیلی خلوته چون همه سعی اینجا ما بزنیم بریم اما اون طرف جمره آخرش خیلی خلوته از اینجا دور می‌زنیم اینجا یا از اون طرف از این طرف اینجا خیلی خلوطه. راحت میتونی برید نزدیک نزدیک با آرام سنگ‌ها رو پارتال کنید پس میرسید اینجا اینجا که رسیدید صورت می‌ریستید خلاق بلا تشبیہ که این طرف میوفته امینا این طرح میوفته حالا سنگ رو پرتاب بسم الله الله اکبر رجمن لشیطان و رزن للرحمان اللهم جل و حج مبرورا و مشكورا مشکورا این دعا رو میخانید بسم الله الله اکبر سنگو پرتاب میکنید سنگ پرتاب کردین خوردن سنگ شما به این دیوار لازم نیست حکم به این دیوار باید سنگ شما بخورید این دیوار خیلی بزرگ کردن تا که اونهای که فکر را سنگ باخورد. آن قدیمه ها که دیوار ستونی بوده. حالا خیلی بزرگش کردن تا وسواس نکنی. خوردن سنگ به خود دیوار ضروری نیست. اکنیم میفتن نزدیکش گفته جمعه شما درسته. اما الحمدلالله امروز دور این سنگ را یک دیواری حصار کشیدند بزرگ تا اینجا میرسه و اونجا هم. پس تو دوشک های خیلی قوی کللا و که فشار هم بیا نمیشید سنگ شما اگر داخل همون چار دیواری افتاد جمره شما سنگ شما درست هست و ادا میشه. پس برآبرید سنگ را پرتاب میکنه بسم الله الله وکهبر سنگ بزن. سنگ کوچه اگر سنگ ها همه با هم پرتاب کردی یک حساب میشه. حالا اجله نکنی بعدی حساب شده سنگ ها رو دستت بگیر حساب داخل دست بزار اول حساب کن. داخل دست چه هفته بذار بردار پرتا کن, بردار پرتا کن. اینجور از جیبی رو هم بکش شاید اشتواه بکنی داخل دست واشه آسان تر از بعد پرتا میکنید سنگ های داخلی همون گودی میره میوفته کسی که حجش حجی مقبولی باشه سنگ هاش و فرشته بر برمیدارند و میبرند سنگی نمیبینی بعد از اینجا غزم جمرات کردیم میری جلوتر اینجا دیگه دعا نیست دعا نم عمل بعدی چی هست؟ عمل بعد حالا در مورد جمرات بگن. در هنگامی که میخواد که جمرات را رام کنی، پس شروع رمش ما بعد از طلوع افطار. قبل از طلوع افطار مکرو... کسی قبل از طلوع افطار خود را به جمرات رسان رم نباید بکند. این مکروه هست مگر برای پیرمردها، بیمارهایی که اصلاً نمی‌تونن، برای اونها جواز هست. پس بعد از زوا... بعد از طلوع افطار سنگ زدن شروع میشه. تا زوال، این سنته. اگر کسی نتونست تا اون وقت بزنه از زور تا غروب سنگ ها رو بزنی. بعض هم اگر نتونست بزنی، از غروب تا فجر صادق باید سنگه ها رو بزنی. اگر بعض هم نزد، یک گذفت لازم میشه. پس سنگه ها رو زدن از طلوع آفتاب تا ظهر اگر از زور نتونست از زور تا غروب، بعض نتونست از غروب تا اشار تا فجر است، تا فجر صبح سهرگاه باید نهارو بزنه اینو بدونید در ایام حاج شبها تابع روز هستن شب تابع روزه شب تابع روز بعد نیست تنها اون پنج روز روزهای بعد انجوری نیست پس برا اگر کسی عرفات نرسید شب بریم عرفات. سر روز نهم ارفات نرسید جای بیمار شو جای مان شب بری ارفات تا هرگاه خودشو عرفات برسونه و بار و جار دیو بیا و بعد اینجا این هست نگاه کن ها اینجا نیوفتن بالا پایین کجا میرن والله و علا حجی که کبوور بشه اون حج سنگ ها و فرشتها میبرن این همه سنگ پرتا میشه اگر نگاه کنویش ما سنگی نمیبینی سنگ ها کجا رفتن زیر زمینی هم نیست که از یه یہ تخلیبشان برن بعد از اطراف جمرات از این اطراف چه غش علوگی اینجا بیا اسم ما از رو وارد میشی اینجا بی سنگ ها رو پرتا این هم دیوار سنگ، اگر سنگ با خودتو ناورده بودی از اطراف عرف خود جمرات سنگ نچینیدی چون سنگه های اطراف این شیطان سنگه های یعنی. سنگ پرتاب شد فوراً دیگه تاریخ این غذا تمام شد این سنگ مردود میشه دوباره استفاده نمیشه پس اینجا تا سنگ زدید و پس بنابرید تا شب فرصت اگر تا شب هم این کارو نکردید بعد از اون دیگه یک وظفندی برای شما واجه میشه بعد این کارها رو بزنید اینجا حضرت ابراهیم علیه و السلام وقتی که برای قربانی حضرت اسماعیل آمد شیطان اینجا راه رو بست وقتی راه رو بست حضرت ابراهیم علیه و السلام با سنگیزای کوچک زره در زمین فرود رفت به خاطر همون سنت این کار رو ما هم ان اونجا انجام خواهیم داد پس بنابرین فقط همین هفت سنگریزه ریزه از مزدرف سنت هم سنگ های روزی بیازده و دوازدهم از مزدرف سنت نیز اجا دیگه میتونید تونی سنگ را بر بدارید و بیاورید اما سنگها. سنگ ها سنگ اگر ناپاک بود باید بشورید با سنگ پاک باید بزنید تأثیر در سنگ پاک است. با سنگ پاک نهار بزنید اگر نجست بودن بشورید این اینکه احتمال داره نجیس باشه، با احتمال چیزی ثابت نمیشه شک نکنید اگر مطمئن بودید حالا که نجیسن بعد بشوری و سنگها رو بزنید و بعد از اون که تمام شد روز عید هست و روز عید اینجا کسو اللہ سنگها رو پرتاب کردید دست ویزاریم بین صورت پرتاب میکن سنگها رو اللہ اگر کسی اینجور نتونیست هم اینجور بزنید فقط حده اون پرتاب سنگی هست اونجا می پس اونجا چی میگی؟ رغمان لی شیطان و رضا لی اللهم اجعل و حج مبرورا و سعیان مشکورا این دعا رو میخونی سنگ میزنی اگر کسی دعا رو هم بلد نبود بسم الله الله اکبر که بلده همین چیز رو بگه و سنگها رو بزنده اما اگر کسی رفتی اونجا بیمار شد نتونست بری رمی جمران بستری شد اونجا یا اصلا زخمی شد نتونست بره اگر بیماری نماز را نشسته باید بخونه استاده نمیتونه نماز بخونه به این صورت بیمار شد یک شخصی رو نائب خودش میگیره نائب سنگه ها منو بزن فلان تو میری میجم ورم از منو هم بزن پس این آقایی که نائب شد و وکیل شد اول سنگه های خودشو میزنه بعد از او سنگه های همون وکیلی که او را وکیل کرده سنگه او را پرتا میکنه و بعد میره بعد دهم ده ده عمل بعدی قربانی کردن خاطر در این توضیحی بدم چون اینجا خیلی اشتوا در این صورت صورت میگیره اگر شما حاجی بودید که حاجی تمتع کردین اول عمره کردید حالا در حجم میکنید اگر به این صورت کشتن یک گوسفند واجبه این میگن دم شکر قربانی شکر است این قربانی واجب هست. این قربانی قربانی خون شما نیست الا فکر کنید الله که میگه میکشین تمام شده این بدونی اگر اگر در مکه ان از حج، از روز هشتم مکه رسیدید و تاریخ پرواز شما که تاریخ مدینه شما به صورتی 15 روز در مکه میمانید. اگر به صورتی شما مکه رسیدید به صورتی که 15 روز در مکه میمانید، در, می در این صورت اگر پودارید، اگر پودار هستید دو تا میشه. یکی با خاطر دمی تمام تو. تو و یکی هم به خاطر قربانی کردنی که همین قربانی که اینجا میکنن حالا اینجا میکشی یا اونجا میکشی اما اگر 15 روزه اما اگر قبلا مدینه بوده برای حج اومده کل ایامش در مکه 10 روزه بیشتر نیستن این هست مسافر بر او قربانی واجب نیست بعد اینو بدونید چه وقت قربانی واجب میشه پس قربانی اگر 15 روز در مکه ایام حج هستید یک دم تمتو واجب به بعد بکوشید چون تمتو کردید جا شکر هست اینجا و یک قربانی به خاطر اینکه سرمایدار هستید و قربانی بعدی واجب میشه این شد قربانیش که باید این چیزو حتما اونجا به کوشش کسی حاجی قرآن هم میکنه باید این کارو انجام بدهد قربانی که اونجا کشت میشه باید از تمام عیوب پاک باشه و اند قربانی هایی که اینجا اونجا میری میبینید گوشتارگاه ها علا یا وکیل مواذه باشی بعضی میایم دلال هست اونجا میگن آقا بده پولو تو قربانی میکشم بخصوص کسانی که بعضی از طلبه هایی که درس میخونن این شیادی رو انجام میدن خیلی بار بار این مشاهده شده می پول ها رو بده من اینجا هستم قربانی میکشم بعد که پول ها رو بگیر تلفنم و رب به امان خدا بالا چیه تل... یا روشن باشی می کشم این کار نکنید اگر داری خودت هار برای قربانی قربانی خودتان بکشید یا شخص وکیل معتبری را به کشتارگاه بفرستید چرا؟ چون که ترتیب واجب اینجا ترتیب اول باید رمی جمرات باشه بعد باید قربانی باشه بعد سر تراشیده بشه بعد واقع زیاره اگر شما قبل از این قربانی کشته بیشه سر و تراشیدید یک گزفندی واجب میشه اینجا پس چون ترتیب واجبه اعتماد نمیشه روی مؤسسه ها پر جمع کن ما برایش قربانی میکشیم. رو این هم اعتبال نکن چرا؟ چون مو... پول واریز کرده حالا که بکشی امروز میکشه فردا میکشه. اونجا خیلی مشکله. چندی میلیون گزفن کشته میشه اونجا. حالا گزفنش شما کجا باشه معلوم نیست. پس سعی کنی افراد معتبر را وکیل برای کشتن حالا با کارواناک میری که کاروانها که خیلی راحتن یک نفر وکیل میره اونجا همه گزفندار میکوشه و اعلام گزفندار من کشته. پس من گوسفند روزه ده دهم دم قربانی دم خود تمتع واجبه پس این وقتی که کشتید بعد کشتن آن حالا میتونید ناخن رو حالا ب... رو بتراشید ناخن اصلاح کنید شما حلال میشید تا اینجا با کشتن قربانی احکام روز دهم ده شما هنوز تمام نشدن اما با تراشیدن سر احرام بیرون آمدید همه چیز حلال میشن الا خانم خانم حلال نیست اما کسی همین زبان مقاربات بکنه با دمی لازم میشه همه چیز حرام حلال الا خانو که هنوز حلال نشده صبر که تا وافی زیارت پس بنابرین اینجا اگر حالا یک کس برای کشتن قربانی چون همه نمیتونن برن کشتارگاه کشتارگاه خیلی دوره و این هم سعی نکنه همه برن چون خیلی اذیت میشید خیلی از اونجا خیلی انتظار میخوا هوا گرمی از گرمی یک نفر میره برای کشتن حالا شما یا میری اصراحه داخل مسافرخانه یا هتل یا میتونید برید کجا؟ حرام داخل حرم تا اون موقع میتونید تواف زیارت را انجام بدهید اگر کسی تواف زیارت را انجام داد جایزه. بهترین است که باز قربانی باشه اما قبل از اون اگر انجام داد جایز هست به هر حال پس بنابراین قربانی وقتی کشته شده بعد گوشتن قربانی سر میتراشی لباس احرام بیرون میکنی به بی همون صورتی قبلا گفتم که باید حالا خودش یا دوسه حالا یا اگر با بسلا با پودر موبور هم اگه استفاده کرد برای تراشن موهایش هم رو ریخت و دو فوراً دور کرد این هم جایزه از احرام میتونه بیاد بیرون لازم نیست ختم باید تیغ باشه بعد از اون که حالا تب... بعد از این بزرگترین عمل بعدی طواف زیارت تواف زیارت فرض هست و تواف زیارت را انجام میدهید. تواف زیارت روز دهم ده یاازم ده دوازدهم. ده از این بعد تاخیر کردی دم لازم میشه. پس میرید حرم همه روز میریید هرم وقتی که حرم رفتید در داخل حرم اول تواف میکنید. تاف زیارت بعد از تواف زیارت سعی بین صفا و موع سعی بین صفا و ومروع شده بعد از اون دیگه، بعد از اون همه چیز حلال، همه چیز حلال خانم حلال، اگه نسان ندارید، همه چیز حلال شده اما اگر کسی این کارو انجام نداد این کارو انتواف زیارت را انجام نداد اگر تواف زیارت را انجام نداد اینجا برای همیشه خانم حرامه تا تواف را انجام بده. اگر یک سال هم طول بکشه، الله فراموش که تواف زیارت را راست، اینجا حرامه تا دوباری بگرده برای بر بر بر بر مکه. توافز زیارت بکنه دوباره یک نصفان دیگه بعد حلال میشن. پس روز دهم ده عمل بزرگ شما هم تواف زیارت هست. توافز زیارت رو اونجا انجام میدی. تواف زیارت انجامگری بعد سه بین صفا میرید. اینه بدانید در توافز زیارت نیت فرضی حتما من نیت میکنم که توافز زیارت را بکنم نه همین که نیت کردن توافز میکنه کافیه و توافز زیارت شما الله رب العالمین هم میپذیره. اما خانوم خانوما اگر معذور بودن اونها طواف زیارت نمیکنن تمام احکام را انجام میدن عرفات میرن مزدلفه میایان منا میایان رمی جمرات میکنن قربانی میکشن و از احرام بیرون میایان اما تواف زیارت را تا روز پاکی باید صبر کنن تا پاک نشوند تواف زیارت را خانوما انجام نمیدن تا شد. اگر مدت طولانی شد مثل عادت 10 روزه نه روزه بود 80 روز شد بازم اشکالی ندارد و دمی لازم هم نمیشود برای برای خانوم ها خانمی که با او باشه بعد از اون که تواف زیارت را انجام دادی طای صفح و سایه بین صفا و مروه میکنی ممنوعات احرام تمام و بعد از اون دیگه برمیگردی به منا اما اگر حاجی این مسئله بعدی چون اونجا وفات خیلی زیاده هر روز شاید اونجا مشهدی هر وقت نماز ده جنازه بیست جنازه میبینی اگر کسی بعد از تواقف عرفات عرفات رفته بود فاوت کرد اینجا در کرده بود که حج من انجام بدهید یک گشتور برای او باید کشته میشه. پر حج او درست است و حجش تمام میشه بعد سای بین صفا مروح است بعد از اون جگه می دوباره کجا؟ دوباره می آید حالا تواف تمام دوباره باید بی به منا حالا خیلی سختی این قدر خشته شده اید از اون شبش از مزدلفه حرکت کرد اومدی منا رمی جماعات کردی دوباره میرید مکه این همه راه دوباره تو واق میکنی صفه مروه میکنی امکان در ساعت یک شب دو شب سه شب اورگ میشی این امکان داره خیلی سختری روز همین روزه سختے روزشه از اونجا حرکت از عرفات حرکت در مسیری تا برسید مکه صفه مروه دوباره برگاش 6 دوبار دوباره برگردی برگر به منا باید بیایید مابیش در مناس سنته حالا وقت نماز رسیده نکته بگم اما اگر اونجا رسید خسته بودی از پا در اومده بودی و میدونستی اگر بر بگردن امکان داره که الان من جای بافتم یا جا خانمی که همراه من هست شاید اونجا دیگه نتونه بره اینجا سعی کنید که تلفات ندهید همونجا بخواب اگر نشود همونجا بخواب اما تلفات ندهید چون تلفات دادن خیلی سخته دیگه اونجا چون رفتن به منا سنت واجب نیست اگر تونستید برید اما اگر نتونستید بعد دیگه جا استراحت کنید حالا تا اینجا که الحمدلله حجم ما تا تقریبا نقطه پایانی رسید